بزگاریست که سودای بوتان دین من است غم این کار نشات دل غمگین من است دیدن روی تو را دیده جانبین باید وین کجا مرتبه چشم جهانبین من است یار من باش؟ که زیب فلک و زینت در از مه روی تو و اشک چو پروین من است تا مرا عشق تو تعلیم سخن گفتن کرد خلق را ورد زبان مدحت و تحسین من است دولت فقر خدایا به من ارزانی داد که این کرامت سبب پشمت و تمکین من است واعز شهن شناس این عظمت گو مفروش زن که منزلگه سلطان دل مسکین من هست یارب این کعبه مخصود تماشاگه کیست که مغیلان طریقش گل و نصبین من است حافظ از هشمت طریذ دیگر قصه مخان که لبش جرعکش خسرو به شیرین من